محمد, محمد، یا حمید الحمد لله رب الأحد الفرد عن لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك فلم يكن لك ولي من دل و کبر و تکبیره و و سلام علی خیر خلقهی و اشرف بریت سیدنا و مولانا حبیب اله لالمین. عبی الغصن المصطفى محمد وآل محمد محمد وحجل وحجل. صلی اللہ علیه وآل محمد.صلى سیما ناموس موسی طاهر امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی را فلانت ادای مجمعین منالون منال قیام یوم الدین خوب امشب شب دهم ماه مبارک رمضان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 خب عرائز ما در این شبه های نورانی ماه مبارک رمضان به حول و قوه خداوند شرح خیلی کوتاهی بر مواعظ و فرمایشات امیر علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام در نهجل بلاخر نامه سی و و یکی دو شبه که به این جملات رسیدیم که حضرت به فرزندشون میفرمایند که لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله و را که بودم یکی از درخشانترین جملات امیر در این نامه است به فرزندشون میفرماین که که تو در مقابل غیر خودت خار نکن زلیل نکن بنده غیر خودت نشو خدا تو رو عزیز آزاد خلق کرده بعد در دنباله می که دیشب اینا رو معنی می کردم که و اکرم عن که ان کل دنی دنیه می بر اون نفس خودت عزت قائل باش نفس خودت رو گرامی بدار و به هر پستی گرایش پیدا نکن و این ساقت که الار رقائد ولو این تن دادن به این پستی ها و سللت ها تو رو به آرزود برساند مثل خیلی خودشون رو خار میکنن ذلیل میکنن مثلا استاندار مصر میشن که مثالش هم زدم مثل امرراست مثلا و مدنم. به هر پستی تن نده، و این پستی ها تو رو به آرزویت برساند قد میفرماید و بدون اون چه که از دست میدی در برابر اون چه که از دست میدی چیزی که به دست میاری ارزشی ندارد ناچیزه بله از استاندار مصر شد ولی خب لعن و نفر اصلا خب اون چیزی که از دست داد مقابل اینکه یه چند روزی استاندار مصر بود اصلا قابل مقایسه نیست یعنی که عزیز مصر میشه ولی از چشمی افته، خار میشه، ذلیل میشه، دینش از دست میره. شرفش از بین میره، انسانیتش هم میگه اونی که از دست میدی در مقابل اونچه که, که به دست میاری ارزشی نداره. باید جملات بعدی که خوندن. بعد از این میفرماید، همش فوق الادست دیگه دیش هر اینا رو خوندن و ما خیر و خیر لا یو نال الا بهشر می خیر نیست چیزی که با گناه به دست میاد تو جای دیگه تو کلمات قصار فرموده خیر نیست چیزی که بعدش آتش جهنمه اونایی که عمر صد مثالم زدم عمر صد به دست آورد ابن زیاد به دست آورد یه چند روزی خب اینا بالاخره شاید به ظاهر دنیا به کامشون بود ولی بعدش آتش جهنمه بعدش خب این باز دنباله اینا که این جمله به نظر من مرتبط با این جملات یه فرمایشی می‌فرمایند که خب خیلی سطحش بالاست. به خاطر این می‌فرماید و انس تطر می‌خوام به خاطر این که سطح این کلام خیلی بالاست میگه اگه میتونی یعنی میخواد بگه که کم کسیه که بتونه این موزایی منو عمل کنه. و اینست تتعتن اگه میتونی می الله یکونه بینکه و بین الله زونعمتن ففعل اگه میتونی که بین تو و بین خدا هیچ واسطه‌ای که بر سرتون منتی داشته باشه نعمتی به تو رسنده باشه وجود نداشته باشه انجام بده این شاید روانش اینه که اگه میتونی در خونه غیر خدا نرو در مقابل هیچ غیر خدایی رون انداز. چیزی ازش نخواه و خیلی سکتش پالاست باقا هم مشکله بعد میگه نگران نباش و نکه دیگه این یه ایمان پولادینی میخواد مثل حضرت امیر میگه نگران نباش و انک مدر کن قسمک همونی که خدا برات قسمت کرده به تو میرسه و در خونه ایش که هم و آخذ اون و اون سهمی که خدا براتو قرار داده به دست میاد خلاصه این یه فرمایش خیلی بلندیه که انسان در خانه غیر خدا اصلا نره از غیر خدا چیزی نخواد خیلی سخته که تو نمازم تقریبا ما اینو میگیم کن نعبد و کن استعین این کن استعین یعنی ما فقط و فقط از خدا کمک میخوایم در خانه غیر خدا نمیدیم عرب بارها تو سخنانه بودم زبان عرب اینطوریه که اول فعل و میارن بعد فاعل و بعد مفعول فارسی اینجور اینه فارسی اول فائل و میارن بعد مفعول و آخر سر فعل میگن علی امر را زد علی فائل عمر مفعول زد فعل عربان عربا اگه همین رو بخوان بگن میگن زرب علیان امرا. این زرب فعله. علی فائل امر مفعوله. زرب الله مثلا. این فعل اوله. زرب الله مثلا. خدا که فائله یه مثلی میزند. قاعده اینه که در زبان عرب چی اول بیاد فعل اول بیاد اگه طبق قاعده میخواست صحبت کنه باید میگفت نعبودو کرد و, و نستعینو کرد این طبق قاعده عربه ما تو رو عبادت فعلو اول بیاده دیگه نعبودو کرد و, و نستعینو کرد اما گاهی عرب ها مفعول رو میارن مقدم میکنن به فائل اینجا این کاره کرده. یاکه نستعید. یاکه مفهوله. اگر این کار رو بکنن انحصار رو می رسونن. این, این نستعید رو که من یه وقت به شما میگم که اوهب بکن. من شما رو دوست دارم. این معناش اینهی که من پسرم و دوست ندارم مادرم و دوست ندارم پدرم و دوست ندارم رفیقم هم میگم اوهب بکم ما شما رو دوست داریم حالا هم دوست داریم هم دوست داریم اما یه وقت میخوام کلا سر شما بذارم میام میگم یاکه اوهب این کلاورداریه میگم من فقط تو رو دوست دارم نیست بر لوه دلم جز علف قامت یار. میگم فقط تو. دیگه زنمونه. بچمونه، خانوممونه. پدرمونه. فقط تو رو دوست دارم. ایا که اوه. ایا که نسته این. یعنی من فقط و فقط در خونه خدا میرم. در خونه غیر خدا نمیرم. فکر کنم دروغ بزرگیه مجموع میکنی نمازهای ما میکنیم. می‌کنیم؟ به حالیم نمازای ما یعنی نمازای ما خیلی خرابه بعدم خدا اسمشو رو مثلا نگفته که اگه اینجوری گفته بود خیلی نماز ما خراب نمیشد. مثلا میگفت نعبود الله و نستعین الله ما خدا رو عبادت میکنیم. از خدا یاری می‌خوایم الله رو مییابیم نیاوردن چون میخواسته کم کسی بتونه نماز بخواند چون بکنی نه نه یعبد الله گفته چی یاکه نعبد چون اینجوری گفته شما حواست به هر جا باشه به اون داری میگی شما ماشین تو بعد جایی پارک کردید میگی نکنه خط بندازن یا افسر ببره نماز هم داری میخونی حواستم ششتم میشه اون ماشینه میگی زود سلامو بدم برم شرری نشه اونجا که میگی یا که نعبد به ماشین داری میگی میگی که من تو رو عبادت میکنم راستم میگی میگی میگه واقعا تو اون رو عبادت میکنی از تو هم کمک میخوام اگه حواست به بچت باشه به اون داری میگی اگه حواست به مال دنیا باشه به اون داری میگی اگه حواست به مغازت باشه به اون داری میگی اصن نمازای ما دیگه بوی گندش میره به عرش. یعنی خدا نماز نیست که، از این چی میخونیم؟ چون اسمی از خدا نیست، خطابه. بعدم اونم فقط و فقط ما از تو کمک میخوایم ما به مرحوم بهلول گفته بودم دیشب کجا بودی؟ گفت جمعکران بودم. یه دویست تا دروغ به خدا گفتیم اومدی <تصفيق> ما خوام بگیم جمع کلام می‌ریم عبادت می‌کنیم او گفتون نه 200 تا دروغ می‌گی مومیایی چون اینا بعد بار بگه تو جمع کردن یاک نه عبد و یاک نه او یه بار بگیال یه دونه دروغه این ما هم آدمی ممکنه نماز بخواند و تو نماز به خدا دروغ بگید بگه من در خونه غیر تو نمی‌رم در صحیح که ما همه جا می‌ریم اگه نشود دیگه مجبوری میایم در خانه خدا حالا اینا که ای اومده اینجا نه همه بر تا جایی دیگه باشه که نمیان در خانه میگه دیگه آخر زنگ می زنه به داداشش میگه یه بلیت بگیر میخوام برم مشهد چاره اینی بعد بریم امام رضا همه جواب کرد این همه که جواب می کنم میگه می چاره اینی چارهینی بچه بچه‌مو ببرم کجا مشهد پیش حضرت رضا انا کسی یک گیری داشته باشه تو شهرداری شهردار تهران داداشش باشه یا پسرش باشه این میره پیش شهردار تهران یا میره جمع پیش امام زمان ببین اگرم هم اونجا همه بهش میخندند میگن مرد اسلامی شهردار که باباته که تو اونو بل کردی و حله تو به جای اینکه بری پیش بابات جمع میکنی رو بندازی اومدی پیش امام زمان کیا میرن پیش امام زمان؟ که دستشون به هیچ جا بند نیبند آقای خدا. برشه کس میان دیگه. نه پارتی دارن نه دستشون به کسی بنده. اینا میگن دیگه ما که هیچ که رو نداریم بریم در خانه پسر نرجس خود. بعدم با ناامیدی هم میان. میگن مردم پارتی دارن ما نداریم. می... میگن اونا با یه تلفن مشکلشون حل میشه. حالا ما باید بریم اینجا بریم حل میشه. نمیشه. یه زنگ بزنتم اما ما تو نماز میگیم که ما در خونه غیر خدا نمیریم وجهت و جهت و وجه ل فطر سطر از سوات و عذ حنیف مثل و ما انل مشککییم تقریبا تو این آیر گفته در خونه غیر خدا رفتن نوعشرکت میکنیم. آدم خدا رو بلکنه در خونه قیر خدا بوی شرک میده دیگه هانو رشید یه بار به بحلول گفت حالا ما به اینجور آدم ما میگیم دیوانه آدم که در خونه غیر خدا نمیرند <تصفح> ما چون میکنیم ما میگیم دیوانه آبا برادرت چهر داره دیگه ما میگیم خله هانو رشید آمد پیش بهلول گفتن این بهلول دیوانه است اومد سلام کرد و بهلول جواب داد گفت یه چیزی از من بخوام تا گفت یه نگاهی با هارون کرد گفت من خدا رو ول از تو بخوام خنددار نی واقعا اون آدم قدرت اول دنیا که همه چی دست ول بر کنه بره از هارون رشید بخواد مثلا بوی شرک میده و وجه تو وجهی للذی آیه قرآن دارم میخونم آیه اینا ابراهیم میگو پیش از این که نماز بخونه و جهد و وجه یا للذی فطر از سماوه اینه همه چی رو اون خلق کرده فطر از سماوه و الارض مسلمان و ما انا من, المش... من در خونه قیل خدا نمیرم شرکه همه رو خدا خر. همه چند دست اونه گوه من خدا رو ول کنم از تو بخوام گوه ملائکه به من نمیخندم نمیگن این خدا رو ول کرده اومده در خونه موجودات مردنی آنه هارون چقدر زیر خاکه خدا انو هست. برین بریم در خانه کسی که نمیمیره ببینید توکل علل حی لذی لا یموت اینا همین میمیرن میرن زیر خاک اثری ازشون نیست خودشون گرفتارن همین آرنور رشید حالا قرار ازم گفت من خدا رو برکم این, نمیف... این چیزها رو اینا نمیفهمن که گفت آقا یه چیزی از من بخوا من بهت میدم بذار جیبت از خدا هم بخوا بذار جیبت دوتا میشه بره که نداره که الان بگو من دیویسمت زمین بهت میدم بخواب میذار از خدا هم بخواه اگه اونم داد و اون که نمیده که اگه اونم داد اونم داده جیبه دم. من که میدم مرده صاحبی ده خدا جب اونو اگه نمیده چون ضرر برات داره خدا اگه نمیده میخواد در خونهشو ول نکنی. اگه اینجوری بخواد بده همه اون میریم یعنی این پنجتا هم در خونه خدا نمیموند من قسم میخورم اگه شما بگه من یه پاساج میخوام همه امشب بد بده سال بعد اینجا من منبر بربرم فکر کنم خودم همون اینجا اونم هم هی میگه زودتر بیا پایین من برم خدا رو حکمت نمیده خدا نداده های خدا بالاتر از داده بعدم چقدر نامهرم میاد اگه خدا بخواد به این سادگی بده بازاریان بازارو میوندن میان اینجا دیگه میگه من سی و سال زرمه برمه پاساج نبرم. اینا یه شب رفتم پاساج برفتم. میگه من دیونم مگه برم بازار. اصلا اینجا همه نامحرم میاد. الان میگن اگه یه دونه بازاری است میاد. بیتول حسن شبها یه سکه میده. تا شهده آدم با این میسته. اونم هم همه آدم های بیعتقاد. امامتان قبل میکنم اون بازاریه سکه میده. اصلا همه نامحرم میاد. ماها دیگه فکر کنم. تو امامل اینا جا پیدا کنید <تبق> میگن <fighting> صدا بلنگونه نمیاد. این حکمت خداست که آقای چی بهت نمیده آشقا میان خدا نمیدونی آقا این چقدر نعمته عاشقا میان علامه امینی میگن پاش درد میکرد از درد رنج میبرد یه روز تو حرم امینون دلش شکسته بود دیگه بغضش ترکیه رو گریه میکرد دیگه وای میشه دیگه میکنم یا امیرال پای ما رو بابا یه با. ننایتی یه توجهی القدیر ما نوشتیم بابا با. توجه میکنی یه انایتی یه توجهی بابا با من پام یه عربی آمد امید که داشت گریه میکرد یه عربی آمد و میداد که سر امیرال مومنین یا امیرال من گوسفندامو و چوفان بود رها کردم تو بیابون نذاشتم بیارم تو حرم شو میکن. اونجا رها کردم بچه هم مریضه شفای بچه رو بده من مثل اینا بیکار نیستم اینجا بایستم بده ما بریم ایام هم رو به بچه هش میکرد میگف خوب شد و میگف نه دوباره تشر میزد گفت آقا مگه شما من با شما نمیگم گوسمده رو ول کردم من اومدم اینجا گفت اینا بیکار هم تا صبح نیگرد مال هی گفت آخر بچه گفت بهتر گفت یا هم این هلیم که این دید دیگه اصلا دیوونه شد ترکید از که ما این همه عدد میکنیم کرنش میکنیم گردن کج میکنیم تو به ما نمیدی این میادی اینجوری جوری بیدار میکنیم میریزه به همهرم و میگره میره رفت خونه خوابش برد شب که خوابش برد مرتضی علی رو خواب دید حضرت بهش فرمودن که من اگه به اون ندم اون نمیفهمه قر میکنه میره تو اگه ندم بازم فردا میای تو یه چیز دیگه ای <تصفح> میکن. این یه کلاس بالاتره که شما بیای نگیری فردش رو بیای تو بگی من علی رو برای نخوطی کشمیش نمیخوام که من خودش رو میخوام ما از تو نداریم به غیر تو تمنا <تصفح> و ما رو میخوای حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. بله اونی که فراریه آقا حلبا بهش میدن یکی رو با قیمه میارن در خونه امام حسین یکی رو با گریه یکی رو با عشق یکی قیمه میده می یکی حالا میاد در خونه امام حسین چهار هزار تا هم قیمه نظر میکنه هم میده هم گریه میکنه هم میگه جون ممنونم پولم اینجا خرج میده کلاسش بالاتره یکی اومده همه در قیمه بخوره گفت تو فرق میکنی با اون میکنه اون که نمی که که میکنه اگه به اون نگاه نکنم میره اما تو رو آقا از در بیرون کنم از پنجره میایی این ارزش داره حالا قرار دامینه وجه تو وجهی للذی فطر از سماوات والعرض حنیفن مسلمان و ما انا منال مشتکین من, در... من در خانه غیر خدا نمیرم و این خیلی کلاس بالا واقعی میگه این استطعته اگه میتونی کار هر کسی نیست کار هر کسی نیست آدم در خانه غیر خدا رو نزند قوله یه دانه از من بخواه یه دانه آرام هون رشید رو میگم بذار جیبت دیگه بابا بگو دیویسمت زمین من میدم حالا خدام داد میشه چهارصد؟ سر که نمی کنی که دید نبا این اصلا تو باغ نی متوجه نمیشه گفت این مگس ها منو اذیت میکنن تو این خرابه دستور بده برن یه خرابه یه دیگه بازی کنن خواست تحقیرش کنن گوب آبا مگس که از من فرمون نمیوره که گفت خواه تو زورت به مگس نمیرسه حاجت منو میتونی بدیم حالا ما یکی یکی حاجت رو میگیم مثلا ما دنیاییاشو میگم ما سنگ کلیه داریم اذیتمون منو میگه تو منم دارم میگه پیرم در اومده میگم ما چربی خون داریم اما یه کاری کنیم یه دوتا نونخامهی هم بخوایم میگه تو منم چربی خون دارم همه اینو برام سمه آقا شب اول قبل ما گرفتاریم دبا میگه خودم هم گرفتار آ روز قیامت ما بیچاره ای میگه از همه بیچاره منه. آقا تو که گلی یه مش آدم متملق دورتو جمع شدن تو خیال کردی آقا تو, ه... تو گرفتارتر از منی تو بیشتر از من به خدا احتیاج داری <تصفح> تو اگه بفهمی آقا میاییم دوتایی میریم در بیا سوت دلان گرد همایی چیما <تصفح> میکنی؟ بالا پایین یعنی چی؟ بیا سوت دلان هر کی دل سخته است بیا جمعشیم دوره هما. هران سوته تریم سنگین تراییم ولی هر کی دل شکسته تره قیمتش بیشتره. در کوی ما شکست دلی می و بس بازار خودفروشی از آن سوی دیگر اینجا،, اینجا آقا نگاه نمی کنن کی کشاورزه کی سفوره کی شهرداره اینجا نمی کی دل شکسته تره اینجا, اینجا قیمت آدم به جایگاهاشون نیست نه اینجا قیمت آدمو به دلهای شکست هست. تا علم و فضل بینی بی معرفت نشیدی یک نکتت بگویم خود را مبین که رستی <تصفح> اینجا, اینجا شکستگی میخرند تا بگی من مثلا وزیرم و من نمیدونم استای دانشگاه و من دکترای فلان دارم من اینقدر ثروت دارم و من حساب بانکیم اینجا دستت به جای بندنی من اینقدر نماز شب خوندم و من رجب و شعبانم روزه گرفتم و من تا امروز سه بار قرآن خط کردم و تا من من میکنی هیچ یک نکته ات بگویم خود را مبین که راستی اما کی آقا میرسی بگی از همه بیچاره تر من میگه <تصفيق> از همه افتاد تر منم اون موقع میره هر وقت از همه افتاده تری بگه همه عاشقای خود یه بزرگی آقا تو عرفات مثل بارون گریه میکرد گفتن چیه گفت میترسم یک بزرگی آقای اونو از اهل دل اومده چون تو عرفات هست جنبنده ای نیست در عرفات به جنبه به مشمول رحمت خدا نشه این گریه میکرد مثل بارون گفت میترسم امسال که من اومدم همه این خلایق به خاطر من محروم میشن. چطور میگه دست خالی برگردم. ولی این این شکستگی خیلی عجب شکست بالترین مرغ این چمنم. مجذوب میگن یا حرمم. هم همه خب بله دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. بالاخره اسم ما عجیبه. چطور میگه از همه دربو و داغون تر ما این ولی بالاخره تو صافی یه چیزی اینجا هستیم دیگه اون شکستگی حالا دیگه این قصه اضامه هم داره. اما قرار زمین است ابراهیم و وقتی میخواستن بندازن و و وجه تو وجهی للذی فطر از سما بهش میگرد اگه میتونی در خونه غیر خدا نره حالا من چی بگم ابراهیم وقتی میخواستن بندازن تو آتیش انقدر این آتشو بزرگ گرفته بودن دیگه کسی جرأت نمی‌کرد جلو بره من من تو تاریخ دیدم روایت دیدم فرسخت در فلسفه فرسخ هیزوم ریخته بودن دن. یه آتش تو یه جا دیدم که گفتن از همه دنیا بر هیزان بدن و تو این کار شریک باشن همه شهرهای دنیا بدن این وقتی آتشه به پا شد گفتن لا کی ببره جلو اینکه با پای خودش که نمیره که جلو. کی به بعد تصمیم کنه این تا چند متری آتیش می سوزونه منجنیق درست کردم به آوردن که تو این جنگا باش سنگای بزرگ پرت می گفتن با این پرتش میکنیم دو تو آتیش تو منجنیق آماده شلیک شد حالا آره دیگه اون آتیشی که نهره میکشه که هر چیزی رو تو خودش به ابراهیم و خوابوندن مله که بارون اومد گفت می انقدر بارون بفرستم همه اینا خاموش بشه. گفت من خدا دارم به تو اتیاج ندارم. <تصفيق> <تصفيق> این توحید اینو ازش میخواد. میگه اگه میتونی هیچ وقت در خونه تیر خدا نریب بکن. فرق علم. اگه میتونی خب سردش بالا شد. خرکتی خدا آقا میدوند که ازش بر نمیاد. ملک باد اومد گفت میخوای باد بفرستم همه اینا رو بزنم منعدم کنم گفت من خدا دارم به تو اتیاج ندارم گفت من در خانه غیر خدا نمید جبرئیل اومد گفت حاجتی نداری؟ گفت به تو نه علای کفلا گفت خدا دارم به تو نه گفت به خدا داری؟ گفت به قول حافظ هر سر موی من با تو هزاران کار است، اما خیلی حاجت داریم قایی نمی چقدر حاجت داریم قایی خودمونم شما نمیدارم. دارم الان اینجا نشستی آقا من تخصص که ندارم از صد هزار بیماری در امانی ولی صد هزار نیاز به خدا داری که اون بیماری ها رو نگیری من یه دونهشو میگم حالا بچه‌ش شما همینطور خانم شما همینطور پدر شما همینطور مادر شما همینطور عروس شما همین حالا فقط من بیماریشو میگم چیزای دیگهشو نمیگم <تصفح> میگم ما چقدر به خدا نیاز داریم نمیفهمیم چقدر نیاز داریم هر سر موی مرا هر یه دونه مو با تو هزاران کار است ما کجاییم ملامتگر بیکار کجا <تصفيق> ولی حالا یه عده میگن چقدر میری در خونه خدا هر شب میری و ویل کن هر شب میری به الله ما اصلا همه وجودمون نیازه فقر کو خواجه نیاز داری بخوا گفت علمهو به حالی حسبی از مقادید باشه دیگه توحید و رسول به انتهای انتها این مرد گوه هم این که خدا منو داره میبینه بسه هر جو خودش بخواد من راضیم به رضای او. شاید خدا دوست داره من اینجا جلد بشم دینش بره جلو راضیم به رضای او. مثل امام حسین دیگه امام حسین گفت شاید خدا دوست داره من زیر سوم عصد برم دینش بمانه امام؟ دعا نکرد شباوش دو... امام دستش بلند نکرد خدای من از شهادت حفظ کن اگه دعا میکرد خدا رو مشو زمین نمی‌انداخت اگه شب عاشورا دبه میکرد تنها بر خدا می‌گفت خدای منو گفتم حسین جان ما بستیم با هم دیگه تا وقتی ما گفتیم خون تو دین رو نگه می‌داره ببینید می‌گفت نه من نمیتونم اسارت دخترم رقیه رو, رو بدین نه نه نه آقا میگن آقا ما نگفته گفته همین که خدا منو میبینه بچهش وقتی که بال بال میزد علی از رو دستش خوناش میریخ چی میگو هف و نعليه برا من آسونه اینهو به نظر الله به عین الله خدا داره میبینه اینها رو دارد میگه حضرت ابراهیم علمهو به حالی حسبی اینهو و هرچی خودش بخواد میکنه هرچی, هرچی به نفع دینشه میکنه اگه بناباشه منو رو نگه داره نگه هم داره اگه بناباشه رفتن من به دین خدا رحمت کنه امام و یه واقع اتا ادامت میکنیم میکنیمتشا گفته بود گفتون من که زندگیم سودی برای اسلام نداره شاید مرگم به داده این اسلام برسد بری آدم آقا زندگیش پایده نداره شهادتش دستگیری میکنه امام موسیم میگه که شاید خدا نظرش اینه با شهادت من دینش رو بیمه کنه من وای صدر. شاید نظر خدا اینه که با اسارت ناموس من دینش محفوظ بماند. من دفعه نمی کنم هستم رزند رزائق تصدیمن لهم رک حالا اگه مثل منی رو بخوابونند تو اون من, من شیطان بیاد حالا ما نمیگیم ملائکه بیان شیطان بیاد دشمن خدا بگه میخوای آقا کمکت کنم گیریم دیگه آقا این که خیلی گیره بزرگیه شما کلیت درد کنه شیطان بیاد دادی رفته سنگ کلیه بگه میخوای آقا سنگ. میگم آقا بکن خدا که برای ما کار نمیم هرچی میگم خدا میگه گفت هرچی میگم خدا میگه زهر ما میگم میگه تو احسابان خود درد میکشم دیگه مثلا کلیه داشتم میدویدم تو بیمارستان. دقیق میگفتن آقا وایسا ما می‌خواید دغارمونم عکس کنیم و نمیتونستان. میدویدم از شدت درد. حالا تو اون درد شیطان بیاد آقا میگه میخوای میگم آقا میتونی بکن همه 5 تا من نمیکنه. همشونو یکی یکی گفتم نتیجه نگرفتم. میتونی بکن این دین ماست. حالا ما که واعظی ماست چوم حالا ما که دو تا داشتی. به این توجه باید. حالا منو خوابوندن اونجا خود شیطان بیاد بگه آقا میخوای دستتو بگم میگم اگه میتونی بکن خدا برای من کاری نمی کن. مگه تو بکن اما به پسرش میگه که اگه میتونی این خیلی سطح این کلام بالاست حالا اگه رفقا دوست داشتن یه شب دیگه من راجع به این کلام صحبت این کلام مفسد کننده است بهایون اگه میتونی که هیچ وقت در خانه غیر خدا نری خفال ضرر نمیکشی بعد پشت میگد میگه همونی که خدا قسمت کرده بهت میرسه نگران نباش سهمت کم نمیشه اتفاق میکنه فقطم میری در خانه مردم خار میشه عزت تو از دست میاد مایلوا سهمت خدا میده نمیذاره مظلوم بشه مردم خارت میکنن، مننت سرت میذارن. عزتت از بین میره. ممکنا برسی، نمیرفتیم در خانه خدا میرفتی میشد. یعنی شما می آدر در خانه خدا با دل شکسته. خدا همون آدمی که بعد کارشو میزنه پس کله همه چی دستو میگه برو کار اینو انجام بده. خودش میاد رو راهتون. میگه آقا مشکلی داری من هستم. داره. شما با چکمه سیر میگی نه الا فعلا که مشکلی نی. میگه بالاخره اگه میخوای ما هستیم خدا به خاطر این میگه تو به سهمت میرسی به اونی که خدا تقسیم کرده میرسی اما اگر میتونی که در خانه غیر خدا رو نزنی ففقل اچواق <تصفح> میکنی چون میبینی حالا اینو من اگه جذبه بدید امرو وقت گذشت یه شب دیگه بهش صحبت میکنم این یه خودو بیشتر جا میفته کلام همش دنبال اون حرفه که لا تکن ابل قیرک خودتو در مقابل غیر خود زلیل نکن خار نکن خدا داری یکی از یکی از ثروتمندان عرب در شبه جزیره عربستان همیاسته خدیجه بود این خدیجه خیلی زنه بزرگیه خیلی بزرگه ماها الان اعتقادات جلسه قبلی هم صحبت میکردن ما اعتقاداتمون خراب شده ما اینا نشانه های اینه که ما از در اعتقادی داریم پس میریم به خاطر این هیچگی آزر اسم دخترشو خدیجه بذاره همه هم میگم قربون هست خدیجه الان چند نفر اسم بطرشون خدیجه میذاره ما قدیم تو کوچه ما من سه چهار تا خدیجه خانم میشناستم چقدر خدیجه میذاشته خدیجه ای که از اسمای پرطرفدار بود میگفتن ببین تو زیارتنامه امام حسین رو میخواییم تو زیارتنامهش تعریف کنیم دیگه فضایل شده میگیم اصلا و محلی که یعنی خدیجه تل کبرا میگن تو کم آدمی نیستی که تو نوی خدیجه ای دیگه این خدیجه چه زنیه که امام حسین باید افتخار کن السلام بعد السلام علیک ابن خدیجه الکبرى ابن فاطمه الزهرا همون اندازه که بر او افتخار بچه فاطمه است. بعد ما میریم اسم دخترامونو به نام هنرپیشه‌ها میذاریم به نام اصلا بعضی وقت به نام سگال به یکی بودن این چیه گوی گلی تو اسم دخترش بود گفتم این الف چیه تو گفت گل گلی در چکوسلوواکی بلغارستان گفتم خب الان میخوای اسم گل بذاری خب ایرانی بذار نیلوفر بذار و بگید ما خودمون گل نداریم نرگست بسار گل هم رفتی هم چوکسلوکی بذاری بعد تو به نام گل چوکسلوکی خدیجه نمیذاری میگه نه آجا تحقیر میشه بچه تحقیر میشه بچه تو بعد میگیم حضرت خدیجه باب هوایجه به قول اون آقای علکی میگه <تصفيق> خدا روی اینا حساب نکن اینا علکی میگن اسم گذاری چه میشه بروم این چه اسمایی ولی هر وقت حاجت داره میگه هسته خدیجه. هست خدیجه خدا این مظلومیت این خانوم نیست که الان یه دونه دختر ما به نام خدیجه نداریم بعدا اگه داشته باشیم اون بعد تو کلاسش تو مدرسهش تو دانوه خجالت بکشه صداش وقتی دو کنن آب بشه از خجالت همه میخن تمام کلاس میخن دار. خدیجه آقا خدیجه آقا بزرگان دینه دیگه این از بزرگان دینه دیگه ما چند تا مگه مثل خدیجه دینه ما داره این از, از اون قله هاست دیگه آقا ما چند تا خدیجه داریم نمیدونید آقا چه زنیم تو این قبرستان ابوطالب طالب قبر متحرشه من چند بار رفتم تو که نمیتونی بدیم میرن پشت از پشت پنجره اونم سه چهار دی. اتوبوس وای میسته پیاده میشن یه راهنمایی هست میگه از تو پنجره میگه اون ته ته دوتا قبر متحره یکی قبر جناب عبو طالب یکی قبر جناب خدیجه من از اونجا آقا یه سلام میکردم سه چهار روز حالی با حالی بود از اون دورا میگفتم به حق دخترت ما رو دست خالی رد من. خیلی آغذنه بود آقایون آخه آقای این همه ثروتشو در راه خدا داده من آقا آدم زیاد دیدم که جونشونو در راه خدا دادن ولی من ندیدم کسی همه ثروتشو داده باشه ما ندیدیم نه ایندمه در جلو منو بگیری شهدا رو آوردی پایینا توجه بگو نه ما شهدا رو نمیاریم پایین شما دیدی آقا کسی همه ثروتشو در راه خدا داده باشه بابا من تا این سن اما این امام حسن که صاحب این خانه هست و شما الحمدلله سر سفره این آقا هستی یه شب برادرم بردار دوبار همه رو در راه خدا داد سه بار نفت کرد این اصلا چیز عجیبیه ایون شما اگه بوده که بگین, بگین ما دیدیم مثلا من یه بازداری میزن و همه سروتشو از نو شروع کرد ما ندیدیم ولی تا دلت بخواد آقا من آدم دیدم جانشو در راه خدا داد خدیجه من توی یک کتاب معتبری میخوندم هشتاد هزار شطور مال و تجاره خدیجه رو در جهان حمل و نقم میکنم هشت... اصلا کسی هشتاد هزار تا شطور داشته باشه تریلیارده ره بخدا ست تا شطور دیه است دیگه تازه این دیهی ای که الان برای آدم حساب میکنن دولتی حساب میکنن اگه اینا واقعیش رو حساب کنن شد هیچ کس نتونه دیه بده شطور خیلی قیمت. هشتاد هزار حالا این شطورا باراشون گرونتر از خودش شطوره اینا بعد تو کجا تو سرزمینی که همین امروز نه اون موقعش حالا همین امروز زنا حق رارندگی ندارن حق رای دادن ندارن شناسنامه ندارن دختر اسمش کجا میاد تو شناسنامه باباش ازدواج میکنه میده شناسنامه شوهای میگیم خوده چی میگه من تو بست دست من الان تازه قرن چندومه بیست و یکوم. اون زمان کسان زنده به گور می دخترو زنده زنده می گوش. این توی یه همچین فرهنگی آقا به این ثروتی که من فکر نکنم تو کل عرب کسی اینقدر ثروت داشته این نشون می که چقدر این زن جایگاه رفی داشته فرهنگ بالا داشته تو اون زمان تا زن پولدار رو همه خاستگارش هم دیگه اصلا آقا کسی باباش پول دار باشه چقدر خواستگار داره تا می خودش پولدار باشه هم که پدرش ملیاردر باشه چقدر خواستگار داره هرچی میگه آقا این دو بار تا حالا ازدواج کرده بیوت میگه فدای سره تا چ میگه بیبر رو به کن گفت باباش تریلیاردره با بابا شکننا رو حالا ایکیزی خودش من باشد. تمام سربتمندهای عرب میومدن خواستگار. به هیچی اعتنال نمی کرد. مثلا ابو جهر خاطر خواش بود. همین ابو صوفیان آقا آمد. همین ولی, ولی دبن مغیره آمد که ریحان اطول عرب بهش میگفتن. اما او خودش آمد خواستگاری پیغمبر اکرامد شد. خودش آمد. دختر نمیرفت خواستگاری. ولی گفت نه من... به پیغمبر یه جمله گفت همه طالب من من طالب تو هم اینه به عقد تو در بیاد گفت همه چیمو رو پای تو میریزم تمام سربتم رو به تو میبخشم فقط یه بله به من ده این چه شخصیتی این پیشناده به پیغمبر داد به برای اموش برای اموهاش اینا خیال میکردن که سر به سر پیغمبر گذاشته اینقدر آقا این ازدواج و رویایی می دانستند همین اموی فیغنبر که ابو طالب باشد دیدیم بعضی به یه میگه چرا ازدواج نمی میگه کی به من دختر میده. اون مثلا برای که سر میگه من یه ای دارم برای جور میکنم. اینا این اخیل که مثلا گفته کی به تو دختر میده. اون گفته گفته خودم گفتن آقا این به این سطحی خاتون ابو طالب گفت برو باش صحبت کن با تو دوستم هست. ببین جدی رفت آقاست و برگشت گوه آقا میگه من همه سروتم هم بدم اینو به دست میارم مثلا آرزومه وقتی پیغمبر, پیغمبر شد آقا از غار هرا برگشت وارد خانه خدیجه شد سلام کرد اولین کسی رو که اعلام کرد من پیغمبر شدم خدیجه بود بعد گفت به من ایمان میاری همی تا قبیم. گفت گفت الان بهت ایمان بیارم گفت <عز> <تصفح> <تصفح> من <تصفح> <تصفح> این گفت من 15 سال پیش که اومدم خواستگاریت من اونجا به تو ایمان آورده بودم من که پولم رو تو تو کوچکه من پولمو رو با خدا معامله کردم گفت من اونجا به تو ایمان آوردم گفت من اگه تو رو پیغمبر نمیدونستم که همه چیمون پای تو نمیریختم به عقد پیغمبر در اومد تمام سروتش رو به پیغمبر تو همون شب اول بخشید بعدم فرمود که منم تو خانه کنیزتم. معنی <تصفيق> از این مادر متولد شد فاطمه زهرا و تربیت شد که به امیرالمومنین میگفتش که ال و بیت توج و تو خانه خانه تو و من کنیز تو هم. با این ثروت پیغمبر می اومد همه برده ها رو می خرید و به این امیه ابن خلف می گفت آقا بلال چند هر قیمتش باشه من به پشتوانه ثروت خدیجه می گفت علم علم وجد و وجدک آعلن فاقنا قران میگه آیا تو فقیر نبودی ما با ثروت خدیجه تو رو غنی نکردیم ببین بلال رو می خرید اونا میدونن با شکم سیر می فروختن قابل دونن شما اتیاج داری سه برابر قیمت میدادند همین تام میگفت پیغمبر میداد بلال میشد که از سربازای است صهیب رومی رو خرید مقداد ابن اشرفو خرید اصلا تمام اون زید ابن سر رو خرید همه اونایی که برای پیغمبر میجنگیدن اینا آزاد شده های پیغمبر بودن با ثروت خدیجه خاطرنین فرمودن اگه ثروت خدیجه نبود بین من به جایی نمیرسید پیغمبر یعنی میدونید این شما آقا این شبا میای برای ما حسین گریه مدیون خدیجه ای روزه میگیری اگه اون نبود بعد این گدای در خونه شو چه میکنه مثلا <تصفيق> این زنی که آقا این محمه سخیه اما بخوام روزه بخونه همین زن من همیشه تو صحبت میام خانوم شما جواهرشو تلاشو میفروشد تلوارم شما براش خریدی ولی خب الان بهش هدیه دادی میفروشه شما رو بزرگتر میکنی خونه خودش بزرگتر در با اما یه موقع اگه جر و بحثتون بشه به شما میگه تو بیچشم روی. میگه ببین من تلوارم و فروختم تو خونتو بزرگم تو قدر من نمیدون یا ماشین تو مثلا اما اینی که آقا همه سروتشو داده همه رو داده و تو این شه به طالب به قدری در فشار بود سه سال میگن خرما که این زن سربتمند دا خرما که به دستش میرسید بلیس میزد م... گاز نمیزد دوباره میذاشت لای برگ درخت میگو اگه دوباره ضعف کردن بر اثر سوه تغذیه تو همیشه از دنیا رفت دیگه تو همیشه بر اثر فشار شدید اقتصادی از پادر درآمد. اما این زنی که داره از پادر میداره یه خواسته کوچیک داره اما طلبکار نیست گفت اگه پیغمبر اون لباسی که تنش بود تو قاره هرام و به او وحی میشد اینو کفن من قرار بده خیلی یه دن پیرن پیغمبر رو میخواد اما نمیگه وظیفشه نمیگه کاری نکرده نمیگه من هم دخترش رو صدا زد گفت دخترم دخترش چند ساله؟ پنج سال. گفت دخترم بابات به تو نه نمیگه روی تو رو زمین نمیده, زمین نمیده. <تصفيق> گفت چطور میگه گفت برو از بابات خواهش کن اون پیراهنی که تو قاره هران اونو کفن من به این کلاس این زنه آمد فاطمه زهراب عاطفه پیغمبر رو به دست گرفت گفت یا رسول الله یا, یا عبتا یه چیزی میگم نه نگو گفت مگه من تالا به تو نگفتم. گفتم گفت مادرم خواهش کرده اون پیرانی که تنت بود آدی اصلا پیغمبر گریه امونش ندار گفت آقا یه پیرانچیه هنون که جواب نداده پیغانی جبریل اومد گفت یا رسول الله خدا به خدیجه سلام میرزونه میگه سلام منو به خدیجه برزونید بهش بگیر کفنت با ما <تصفيق> ما تو رو لنگ نمیکنه <تصفيق> تو همه چی تو در راه خدا داری لنگ نمیمونی که کفنت با من تو اصلا نیازی به پیراهن پیغمبرم نداری خب خدا بخواد کفن بده دیگه متر نمیکنه که مثلا بگه پنی متر کفنه مت متر اینم شیش متر یه تاق داد دیگه, یه دیگه. پیغمبر میگه حجم این پارچه زیاده اینو پنج قسمت کرد گفت یکی مال خدیجه یکی هم مال خودم گفت یکی هم مال برادرم امیر المومنی یکی هم مال دخترم فاطمه زهران یکی هم مال پسرم امام حسن را الان جوان میگم میگن مال امام موسیقی مال اون نگران نباشید، مال اون را بنی اسد میاره <تصفيق> آله بوریاد حسیر میارم. وقت زین العابدین صدا میزد بنی اسد برین دیگه یه تیکه حسیر بیارین. یه تیکه بوریاد. باز یه پله جلو ببرم رو. اینجا روزه خوب بودا. غریز خوبی بود. اما میخوام یه پله دیگه بیارم جلو. کفنش هم آوردن وقتی کفن رو بهش دادن دیدن های های دیگه گریه میکنن قدیجه بیتابی میکرد. این زنای مجلله امه ایمن بود زنای بزرگی بودن اسمای بنت اومیس بود گفتن دیگه تو چرا بابا کفنت از بهشت اومده خدا به تو وعده بهشت داده از عرش به تو سلام رسنده تو چرا؟ گفت نه دیگه برای خودم گریم گفت برای این دخترم گریم گفتن چطور؟ گفت این پنج سالش شب زفاف دختر احتیاج داره به کمک مادر من همیشه میگم من همیشه اینو گفتم دختر اگه شب زفاف مادر نداشته باشه خیلی یتیمانه میره قنعه بعد اصلا دختر از مادر یتیم میشه از پدر یتیم نمیشه خیلی سخته یه دختر شب زفاف مادر نداشته باشه اما پیغمبر میخواست جای خدیجه رو پر کنه اون نمیتونه کار مرد نیست مرد نمی... چه این کرد پیغمبر رو خودش کمک کرد سوار شطورش کرد انان شطور رو داد از سلمان فارسی گرفت سی سد و صحابی از جلو میرفتن چقدر مردان از راست از شد چقدر ملاعکه بودن که خدا میدونه این زنا که میامدن ای پیغمبر به این خانوما میگفت ارجوزه بخونید سرودای شاد بخونید. الان ارجوز هم وقتی رسیدن پشت خانه امیرالمومنین. المومنی دم اون حجره پیغمبر یه جمله گفت اصلا آکشی به پا شد <تصفح> واقعا این جمله جانسوزه گفت که مادرش خدیجه بود این شب حیلی خوشحال شد. گفت <تصفح> جای خدیجه خالیه اما شما زحمت کشیدین آوردین کمک کردین مقصم به زنا میگفت اما خواهشم اینه. دیگه همه برن این زوج رو تنها بذارن پیغمبر دو رکعت نماز کن اومد بره تو وجود، دید همه رفتن اسما داره قدم میگیره. خب اسماء مگه نگفتن؟ گفتم من به خدیجه قول دادم. خب خدیجه اون شب خیلی گریه میکرد. من یواشکی بهش گفتم من جای تو رو پر میکنم. او چقدر خدیجه منو دعا کرد. اما یه جمله ما اما خب حقشو ادا کنید میخوام بگم دختر دو جا احتیاج پیدا میکنه به کمک مادر یکی شب زفاف اینجا اصما اومد یکی هم موقع وضح همله موقع وضع همل دختر بیشتر احتیاج داره به کمک مادر اونا که ازدواج کردن میدونن اون آقا تا دردش بگیره اولین جملهی که میگه میگه برو مادرمو خبر کن <تصفيق> قرار نداره تو مادرش بیاد وضع عمل فاطمه بین درودیوار بوده آخه اونجا هم بچه افتاد هم پهلون شکرد هم صدای ناله فاطمه بلند شد اینجا اسما اومد اما بین درودیوار فضه اومد یه وقت صدا زد یا فضت و خوزینی فضه <تصفيق> ویاب به خدا بچه رو کشتن قد قتل مافی فی احشای این نداره یه جل یه قد... با این آمادگی اومد دیگه فضه با این آمادگی اومد که بچه رو بگیره بحث محسنه قد قتل ما اما میگه تا اومدم دیگه اسمی از محسن نیابرد نگفت محسن نگفت پهلوم. گفت علی رو کجا بردن <تصفيق> گفتم علی رو بستند دنبال هیدر میدهد <تصفيق> این چادرش رو به کمر برد از سینه از خون می، چهل مرد از یه طرف میکشن تاتمه از یه طرف. خیلی معذرت میخوام از امام زمانم معذرت میخوام یه وقت به قنفوز اشاره کرد آخ آخ آخ بگه بسه اینجا میخوام کربلا اینا رو بردم که گریز بزنم اینجا مادر رو زدن تو گودال دختر رو دختر از مادر ارز بر یه وقت سکینه صدا زد بابا پاشو اما رو دارن تازیانه میزنن اون زور الا اممتی